ده، رایه پول مکزیک که تا آن زمان یک دنیای منصوی بود، توسط هرنان کورتس و جنگاورانش در سال 1519 تسخیر شد. بومیان منطقه که خود را آستک می‌نامیدند، به زودی دریافتند که این بیگانگان علاقه وافری به فلز زرد خاصی نشان می‌دهند. آنها در حقیقت هرگز از صحبت کردن راجع به آن باز نمی‌ماندند. بومیان با طلا ناآشنا نبودند طلا چیز قشنگی بود و کار کردن با آن ساده بود آنها با آن جواهرات مجسمه میساختند و گاهی هم از خاکه طلا به عنوان وسیله مبادله استفاده میکردند اما وقتی یک آستک میخواست چیزی بخرد معمولا بهای آن را با لوبیای کاکائو یا توپ پارچه می پرداخت شیفتگی اسپانیایی به طلا برای شان غیر قابل درک بود. چه چیز مهمی در این فلز وجود داشت که نه قابل خوردن بود و نه قابل نوشیدن بود و نه قابل بافتن و نرم تر از آن بود که بتوان با آن ابزار یا سلاح ساخت؟ وقتی بومیان از قرته سال کردند که چرا اسپانیایی ها تا به این حد مجذوب طلا هستند، فاتح پاسخ داد: زیرا من و جنگجویانم از یک بیماری قلبی رنج میبریم که تنها با طلا قابل علاج است. در دنیای آفروآسیا که اسپانیایی ها از آن می آمدند، شیفتگی به طلا یک امر فراگیر بود. حتی دشمنان خونین به این فلز زرد رنگ مصرف شهوت فراوان داشتند. سه صده قبل از تسخیر مکزیک، پدران کورتس و ارتش او جنگ مذهبی خونینی را بر علیه پادشاهان مسلمان در ایبریا و آفریقای شمالی بپا کردند. پیروان ایسا و پیروان الله همدیگر را هزار هزار می دشتها و باغها را ویران می کردند و شهرهای پرونق را می و به آتش می کشیدند. و این همه را در شوکت اقتدار مسیح یا الله انجام می دادند. وقتی مسیحیان به تدریج بر مسلمانان چیره شدند پیروزی های خود را نه فقط با ویران کردن مساجد و برپایی کلیساها، ها بلکه همچنین با زدن سکه های جدید از طلا و نقره جشمی گرفتند که بر آنها یک صلیب و علامتی حق شده بود حاکی از تشکر از خدا برای یاریش در نبرد علیه کفار اما در کنار جنگ جدید فاتحان به ضرب نوع دیگری از سکه به نام میلارس پرداختند که حامل پیام متفاوتی بود این سکه های مربع شکل ساخته فاتحان مسیحی به یک خط عربی سیال از این شده بود که می هیچ خدایی به جز الله وجود ندارد و محمد پیامبر خداست حتا اسقف‌های کلیسای کاتولیک مناطق ملگیل و اگده این سکه‌های محبوب مسلمانان را رواج می‌دادند و مسیحیان خداترس با رضایت کامل از آنها استفاده می‌کردند. مدارا در سوی دیگر تپه هم شکوفا شد. تجار مسلمان در شمال آفریقا در ادامه تجارت خود از سکه های مربع مسیحی مثل فلورین فلورانسی، دوکات ونیزی و گیگلیاتوی ناپلی استفاده می کردند. حتی حاکمان مسلمان که علیه کافران مسیحی حکم جهاد می دادند، از دریافت مالیات با سکه های مسیحی که مسیح و مادر باکره را فرامی استقبال می کردند. چقدر می ارزد؟ شکارگر خوراکجو پول نداشت، هر گروهی شکار میکرد، غذا گردآوری میکرد و تقریبا هر چیزی که لازم بود را تولید میکرد، از گوشت تا دارو و از صندل تا جنبل و جادو. گروه های مختلف احتمالاً در وظایف متفاوتی تخصص میافتند، اما کالاها و خدمات خود را به صورت اقتصاد داد و ستد به اشتراک میگذاشتند، یک هدیه به شکل یک تکه گوشت مجانی متقابلا با کمک پزشکی پاسخ داده میشد. گروه از نظر اقتصادی خودکفا بود. تنها موارد معدودی مثل صدف دریایی، سنگ آتش فشانی، رنگدانه و از این قبیل که در درون گروه یافته میشد از گروه های خارجی خریده میشد. این کار می توانست به صورت داد و ستد ساده انجام شود. ما به شما صدف دریایی قشنگ می دهیم و شما به ما سنگ چخماقه با کیفیت می دهید. این شکل و ستت با آغاز انقلاب کشاورزی تغییر چندانی نکرد. اکثر مردم کماکان به زندگی در جامعه های کوچک سمیمانه ادامه دادند. هر روستا، همانند گروه های شکارگر خوراکجو از طریق داد و ستد متقابل به صورت یک واحد اقتصادی خودکفا باقی ماند و در موارد معدودی هم داد و ستد با بیرون از رامعه خودی صورت می گرفت. یک روستایی شاید به طور ویژه در ساختن کفش و دیگری در ارائه خدمات درمانی مهارت می آفت. به این ترتیب روستاییان میدانستند در صورت نیاز به کفش یا هنگام ناخوشی به چه کسی مراجعه کنند اما روستاها کوچک بودند و اقتصادشان محدود بود به این دلیل هرفه های تمام مانند کفاش و دکتر وجود نداشت ظهور شهرها و پادشاهیها و بهبودی در زیر ساخت و نقل امکانات جدیدی را برای تخصص با خود به همراه آورد شهرهای پرجمعیت اشتغالهای تمام مختی را نه فقط برای های حرفی و دکترها بلکه همچنین برای نجارها، کشیشها، سربازها و حقوقدانان به وجود می آورند. روستاهایی که برای تولید شراب گوارا، زیتون خوب یا سرامیک های با کیفیت شهرت پیدا میکردند، دریافتند که میتوانند فقط در آن زمینه معین متخصص شوند و با جوامع دیگر معامله کنند و به این صورت کالاهای مورد نیازشان را تهیه کنند. این کار معقولی بود. آب و هوا و خاک متفاوت است. چرا شراب متوسطی را که در باغ خود به عمل آوردهای بنوشی در حالی که میتوانی شراب مرقوب تری را بخری که در شرایط اقلیمی بسیار مناسب تر تولید شده؟ اگر خاک روس باغ تو برای ظروف محکم و زیباتر تر مناسب تر است، میتوانی با دیگران معامله کنی. علاوه بر این از دکترها و وکلا که بگذریم سفالگران و شرابسازان تمامقت میتوانند تخصص خود را برای مسلحت همگانی بالا ببرند اما شیوه تخصصی مشکلات خود را دارد چطور میتوان تبادل کالاها میان متخصصین را سامان داد هنگامی که تعداد زیادی از ناشنایان میخواهند با هم همکاری کنند یک اقتصاد داد و ستت نیست کمک لوازم به خواهر یا همسایه جای خود را دارد، اما اگر به ناآشنایان کمک کنیم که شاید هرگز در پاسخ کمک شما را جبران نخواهند کرد، قضیه بسیار متفاوت تر می شود. می توان به داد و ستت پایا پای بازگشت، اما مبادله پایا پای تنها وقتی موثر است که معامله میان تعداد محدودی از تولیدات باشد، اما نمیتواند تواند پایه ای برای اقتصاد پیچیده باشد. برای درک محدودیت های مبادله پای, و پای تصور کنید که مالک یک باغ سیب در تپه‌ای هستید که شیرینترین و ترد ترین سیب های منطقه را تولید می کند. شما در باغ خود آنچنان سخت کار می کنید که کفش پاره می شود. بعد علاق خود را به عرابه میبندید و راهی بازار شهر در حاشه رودخانه میشوید همساییتان گفته که یک کفاش در قسمت جنوبی بازار برایش یک جفت پوتین بسیار محکم درست کرده که پنج فصل برایش باقی مانده. شما مغازه کفاش را پیدا می کنید و در ازای کفش هایی که احتیاج دارید مقداری از سیبهایتان را به او پیشنهاد نهاد می کنید. کفاش مردد است. چقدر سیب به عنوان دستمز باید از شما طلب کند؟ او هر روز با ده ها مشتری روبرو می شود و تعدادی هم با خود کیسه های سیب همراه دارند، در حالی که تعدادی دیگر گندم، بوز یا لباس می آورند و هر کدام با کیفیت های متفاوت. تعدادی دیگر تخصص خود را برای نوشتن عریضه به شاه یا درمان کمردرد پیشنهاد می کنند. از آخرین باری که کفاش در مقابل کارش سیب دریافت کرد سه ماه گذشته و او سه کیسه سیب طلب دارد. یا شاید چهار کیسه اما او به خاطر میآورد که آن سیب از دره سیب های ترش آمده بود، نه آن تپه‌ای که سیب های داشته. از طرف دیگر او سیب را در ازای کفش های کوچک زنانه دریافت کرده بود اما این آقا کفشهایی در اندازه مردانه میخواهد. از این گذشته طی هفت اخیر یک بیماری باعث تلفات گله اطراف شهرک شده و چرم کمیاب شده. دباق در ازای همان مقدار چرم الان تعداد دو برابر کفش آماده طلب می کنند. آیا اینها نباید به حساب بیاید؟ کفاش رو تولید کننده سی باید در اقتصاد مبادله هر روز صبح نرخای نسبی ده ها کالا را بیاموزند. اگر 100 کالای متفاوت در بازار معامله شود، فروشنده و خریدار ملزم به دانستن نرخ معاوضه 4950 قلم نرخ مبادله مختلف هستند. و اگر هزار کالای مختلف معامله شود، فروشنده و خریدار باید با 499500 نرخ مبادله مختلف دست و پنجه نرم کنند. این چطور ممکن است؟ وضعیت باز هم بدتر خواهد شد. حتی اگر بتوانید محاسبه کنید که چه مقدار سیب معادل یک جفت کفش است، باز مبادله پایاپای پای همیشه عملی نخواهد بود. یک معامله ایجاب می‌کند که هر طرف آنچه را که طرف مقابل می‌خواهد به او بدهد. چه می شود اگر کفاش سیب دوست نداشته باشد و در لحظه مورد نظر احتیاج به کمک برای طلاق داشته باشد؟ در این صورت باید به دنبال وکیلی بگردید که سیب دوست داشته باشد و یک معامله ی سه طرفه ترتیب دهید. اما اگر وکیل به اندازه کافی سیب داشته باشد و در حقیقت به سلمانی احتیاج داشته باشد چه؟ بعضی جوامع سعی کردند این مشکل را با برپایی یک نظام مرکزی مبادله پایاپای حل کنند که محصولات کشاورزان متخصص و صنعتگر را جمع‌آوری می‌کرد میکرد و آنها را بین کسانی که نیاز داشتند توضیح میکرد. گستردهترین و معروفترین نمونه این تجربه توسط اتحاد شوروی هدایت میشد که به گونه ای رقتبار با شکست روبرو شد. ایده هر کس بندازه توانش کار بکند و هر کس بندازه نیازش بردارد، در عمل به این منجر شد که هر کس تا جایی که میتوانست کمتر کار میکرد و هر کس تا جایی که میتوانست برمیداشت. تجربه های معتدلتر و موفق به وقو پیوسته که به عنوان مثال میتوان از نمونه ای امپراتوری این کان نام برد، اما اکثر جوامع راه ساده تری برگزیدند تا با تعداد گسترده ای از متخصصین ارتباط برقرار کنند و پول را به وجود آورند. صدف و سیگار پول در بسیاری از مقاطع زمانی و در بسیاری از مکانها آفریده شد. تکامل پول نیازمند هیچ نوآوری فنی نبود، بلکه یک انقلاب فکری محض بود. این به معنی خلق واقعیتی بین و جدید بود که تنها در تخیلات مشترک انسان ها موجود است. پول سکه و اسکناس نیست. پول معادل ارزشی قانونمند است که می تواند جایگزین تمام کالاها و خدمات مورد نیاز باشد. مردم را قادر میسازد تا به سرعت و به آسانی ارزش کالاهای مختلف مثل سیب و کفش و طلاق را با هم مقایسه کنند و آنها را به سادگی با هم مابظزه کنند و ثروت دستست آورند. پول در انواع متفاوت بسیاری وجود داشته و شناخته شده ترین نوع آن سکه است که یک قطعه فلزی هک شده مرسوم است اما، پول مدتهای طولانی قبل از ضرب سکه هم وجود داشته و فرهنگهای مختلف از چیزهای مختلفی به عنوان ارز استفاده کردند. مثل صدف دام پوست نمک غلات مهره لباس و سفته در سراسر آفریقا آسیای جنوبی آسیای غربی و اقیانوسیه در حدود چهار هزار سال پیش از پوسته صدف به عنوان پول استفاده میشد در اوگاندای بریتانیایی در اوایل قرن بیستم مالیات هنوز می توانست به صورت پوسته صدف پرداخت شود. در زندانهای جدید و بازداشگاه ها، از سیگار اغلب به عنوان پول استفاده شده. حتی زندانیان غیر سیگاری مایل بودند از سیگار برای پرداخت و به عنوان معادلی برای تمام کالاها و خدمات استفاده کنند. یکی از بازمانده های آشویتز تعریف میکرد که چطور سیگار به عنوان ارز در اردوگاه استفاده میشد ما ارز خود را داشتیم که هیچکس ارزش آن را زیر سوال نمی برد بهای هر قلم بر اساس تعداد سیگار بود در شرایط معمول یعنی وقتی منتخبین اتاق گاز به صورت منظم وارد اردوگاه میشدند، یک نان، دوازده سیگار ارزش داشت، یک بسته 300 گرمی کرسی سیگار، یک ساعت مچی بین هشتاد تا دویست سیگار و یک لیتر الکل 400 سیگار ارزش داشت در حقیقت حتی امروزه سکه ها و اسکناس ها یک شکل نادر از پول هستند مجموع کل پول در دنیا در حدود 600 تریلیون دلار است در حالی که مجموع کل سکه و اسکناس معادل با چیزی کمتر از 6 تریلیون دلار است بیش از 90 درصد از کل پولهایی که وارد های بانکی ما میشوند، یعنی بیش از 50 تریلیون دلار فقط روی سرورهای کامپیوتری هستند در ادامه اکثر معاملات تجاری به صورت جابجایی الکترونیک اطلاعات از یک حساب کامپیوتری به حساب دیگر و بدون هیچ جابجایی فیزیکی نقدی انجام می شود فقط به برای خریدن یک خانه با یک چمدان پر از اسکناس معامله می کنند تا وقتی که مردم مایل باشند که از طریق انتقال اطلاعات الکترونیکی به معامله کالاها و خدمات بپردازند، این روش را بر رد و بدل کردن سکه های و اسکناس های تانخورده ترجیح می دهند و در ضمن راحت تر می توانند معاملاتشان را ردیابی کنند برای اینکه که نظام پیچیده تجاری عملی باشند نوعی از پول ضروری است در یک اقتصاد پولی یک کفاش فقط نیاز دارد قیمت انواع کفش را بداند نه نرخ تعویض کفش با سیب یا با بوز پول متخصص سیب را همچنین از دردسر جستجوی کفاشی که علاقمند به سیب باشد معاف می‌کند زیرا همه در هر شرایطی خواهان پول هستند این شاید اساسی ترین ویژگی پول باشد هر کسی در هر شرایطی خواهان پول است زیرا هر کس دیگری هم همواره به دنبال پول است این بدین معناست که شما می توانید پول را با هر چیزی که بخواهید یا لازم باشد معاوضه کنید کفاش همیشه از گرفتن پول شما خوشحال خواهد شد زیرا این مهم نیست که او واقعا چه چیزی لازم دارد سیب، بوز یا طلاق او می تواند همه اینها را با پول بدست آورد بنابراین پول یک وسیله فراگیر برای معامله است که انسانها را قادر به تبدیل تقریبا هر چیزی به هر چیز دیگر می کند. آنجا که یک سرباز بعد از پایان خدمت هزینه تحصیل خود را از طریق حقوق سربازی می‌پردازد، نیروی ازولانی به نیروی فکری تبدیل می شود. زمانی که یک نجیب زاده قسمتی از مای خود را می فروشد تا حقوق خدمتکارانش را بپردازد، زمین به وفاداری تبدیل می شود. وقتی که یک پزشک از حق درمانی که از بیمارانش دریافت می کند وکیلی را استخدام می کند یا یک قاضی را تطمیع می کند سلامتی به ادالت تبدیل می شود. حتی تبدیل خدمات جنسی به رستگاری هم وجود دارد، آنجا که فاحشههای قرن پانزدهم در ازای پول با مردانی می و بعد از همان پول برای خرید فرمان اف از کلیسای کاتولیک استفاده می نمونههای آرمانی پول نه تنها امکان تبدیل چیزی به چیز دیگر را ممکن می کند بلکه امکان اندوختن ثروت را هم به وجود می آورد. بسیاری از چیزهای با ارزش نمیتوانند ذخیره شوند مثل زمان و زیبایی. بعضی چیزها را هم میتوان به مدت کوتاهی ذخیره کرد مثل توتفرنگی. و چیزهای دیگری هم ماندگارترند اما به فضای زیاد و مراقبت نیاز دارند مثل غلات که می برای سالها انباشت شود ولی در مقابل موش، کپک، رطوبت، آتش و دزد به انباری بزرگ و اقدامات حفاظتی احتیاج دارد. پول خواه به صورت اسکناس باشد یا رمزهای کامپیوتری یا صدف کاروری همه این مشکلات را حل می کند. صدف کاروری فاسد نمی شود، برای موشها غیرقابل قابل جویدن است. در مقابل شعله آتش مقاوم است و به اندازه کافی کوچک است که بتوان آن را در گاف صندوق قرار داد. برای استفاده از ثروت فقط کافی نیست که آن را پس انداز کنیم. اغلب لازم می آید تا آن را جابجا جا کنیم اشکالی از ثروت مثل املاک کاملا غیرقابل قابل جابجا جا شدنند کالاهایی مثل گندم و برنج به سختی می توانند جابجا جا شوند تصور کنید که یک کشاورز مرفه که در یک سرزمین بدون پول زندگی می کند و به یک استان در دوردستها ها مهاجرت می کند ثروتش عموما شامل خانه و مزارع برنجش است او قادر نخواهد بود تا خانه یا مزرعش را با خود ببرد. پس ناچار می شود آنها را با چندین تن برنج معامله کند. اما حمل و نقل آن همه برنج هم بسیار دشوار و گران خواهد بود. پول این مشکلات را حل می کند. کشاورز می تواند مایملک خود را بفروشد و با یک کیسه صدف کاوری مبادله کند که به راحتی قابل حمل و نقل است. از آنجا که پول می تواند دارایی را به راحتی و به ارزانی تبدیل، پسنداز و جابجا کند، سهمیهایی در شکلگیری شبکه های پیچیده تجاری و بازارهای پویا داشت. شبکه های تجاری بدون پول و بازار محکوم خواهند بود تا از نظر اندازه پیچیدگی و پویایی بسیار محدود باقی بمانند. پول چطور عمل می کند؟ صدف کاری و دلار تنها در تصورات مشترک ما ارزش دارند. ارزش ها در ساختار شیمیایی صدف و کاغذ اسکناس یا رنگ و شکلشان نیست. به عبارت دیگر پول یک واقعیت مادی نیست بلکه یک ساختار روانی است. پول با تبدیل ماده به ذهن عمل می کند. اما چطور موفق به این کار می شود؟ چرا کسی باید مایل باشد که یک مزرعه حاصل خیز برنج را با مشتی صدف بیمصرف عوض کند؟ چرا شما مایلید در یک عقضی فروشی همبرگر سرخ کنید یا بیمه درمانی بفروشید و یا از سه بچه لوس پرستاری کنید و تنها آیدیتان برای این همه زحمت چند تکه کاغذ رنگی باشد؟ انسانها مایلند این کارها را انجام دهند زیرا به افسانه موجود در تخیلات مشترکشان اعتماد دارند. اعتماد ماده خامی است که بر تمامی انواع پول حک می شود، وقتی یک کشاورز ثروتمند مایملک خود را در مقابل یک کیسه ی صدف کاری می‌فروشد و با آن کیسه به مکان دیگری سفر می‌کند این به این معناست که او اطمینان دارد که با رسیدنش به مقصد مردم آنجا مایل خواهند بود تا به او در مقابل صدف برنج، خانه و مزرعه بفروشند بدین ترتیب پول نظامی است از اعتماد متقابل و نه فقط هر نظامی از اعتماد متقابل بلکه فراگیرترین و مؤثرترین نظام اعتماد متقابلی که تا کنون ابدا شده آنچه که این اعتماد آفریده شبکه طولانی مدت و بسیار پیچیده‌ای از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است چرا من به صدف کاوری یا سکه طلا یا اسکناسهای دلار اعتماد دارم؟ زیرا همسایه من هم به آنها اعتماد دارند و همسایه به این اعتماد دارند زیرا من به اینها اعتماد دارم. همه ما به اینها اعتماد داریم زیرا شاه ما به اینها اعتماد دارد و اینها را به شکل مالیات از ما طلب می کند و به این دلیل که کشیش ما به اینها اعتماد دارد و یک دهم ده از اینها را طلب می کند. یک اسکناس ده دلاری را بردارید و به دقت به آن نگاه کنید. تکه ای کاغذ رنگارنگ رنگ می بینید که امضای وزیر خزانه داری آمریکا در یک طرف و شعار ما به خدا اعتقاد داریم در طرف دیگر آن نقش بسته. ما دلار را به عنوان وجه پرداختی می زیرا ما به خدا و به وزیر خزانه داری آمریکا اعتماد داریم. نقش اساسی اعتماد بیانگر این است که های مالی ما تا به این حد با های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک ما پیونده نزدیک دارند و حاکی از این است که های مالی ناشی از تحولات سیاسی هستند و صعود یا سقوط بازار بورس بستگی به احساس بازرگانان در یک صبح معین دارد. ابتدا وقتی اولین نسخه های پول به وجود آمدند، مردم این نوع از اعتماد را به آنها نداشتند. پس ضروری بود تا پول را به عنوان چیزی تعریف کنند که ارزش ذاتی واقعی دارد. پول سومری جو به عنوان اولین پول شناخته شده تاریخ نمونه جالبی است که سه هزار سال قبل از میلاد در سومر به وجود آمد، یعنی در همان زمان و مکان و تحت همان شرایطی که خط ابدا شد. همانطور که نوشتن تکامل یافت تا به نیاز های فضاینده اداری پاسخ دهد، پول جو تکامل یافت تا به نیاز های فضاینده اقتصادی جواب دهد. پول جو همان جو بود، یعنی میزان های ثابت دانه جو که به عنوان مقیاس فراگیر سنجش و مبادله تمامی کالاها و خدمات عمل می‌کرد. مرسوم ترین مقیاس سنجش سیلا بود که حدوداً معادل با یک لیتر بود. پیمانه های استاندارد با مقیاس سیلا وسیعاً تولید شد به طوری که هرگاه مردم احتیاج به خرید و فروش چیزی داشتند به راحتی می توانستند به عنوان معادل مقدار لازم جوراب پیمانه کنند. مستها هم در قالب سیلای جو با جو محاسبه و پرداخت می شدند. یک کارگر مرد ماهانه شست سیلا و یک کارگر زن سی سیلا مزد می گرفت یک سرکارگر می توانست بین 1200 تا هزار سیلا مزد دریافت کند حتی گروستنه ترین سرکارگر هم نمی در ماه هزار لیتر جو بخورد، اما می توانست از سیلایی که خودش نمیخورد برای خرید انواع کالاها استفاده کند مثل نفت بوز، برده و چیزهای خوردنی دیگر در کنار جو. اگرچه جو یک ارزش واقعی داشت، ولی قانع کردن مردم به استفاده از آن در ورای ارزش خود به عنوان پول و معادلی برای همه کالاها و خدمات آسان نبود. برای فهم این مطلب فکر کنید چه اتفاقی میتوانست بیفتد اگر شما یک کیسه پر از جو را با خود به مرکز خرید محلی خود میبردید و سر می کردید تا با آن یک پیراهن یا یک پیتزا بخرید. خریدار شاید نگهبان را صدا میزد. اما با این وجود تا حدودی راحت بود تا اعتمادی را نسبت به جو به عنوان اولین نوع پول بنا کنند زیرا جو یک ارزش واقعی زنده داشت. انسان ها می توانند آن را بخورند. از طرف دیگر حمل و نقل و انباشت جو مشکل بود. پیشرفت واقعی زمانی اتفاق افتاد که مردم به پولی اعتماد کردند که فاقد ارزش ذاتی بود اما حمل و نقل و انباشتنش آسان تر بود. چنین پولی در بین و باستان در میانه هزاره سوم قبل از میلاد به وجود آمد. این پول شکل نقره بود. شکل نقره یک سکه نبود اما هشت ممیز سی و گرم نقره بود. وقتی نظامنامه همون اعلام کرد که اگر یک مرد مافق یک زن برده را بکشد باید به صاحب او 20 شکل نقره بپردازد منظور او این بود که او باید صد و شست و شش گرم نقره بپردازد نه 20 سکه. اکثر واجه مالی در وسیعتنامه قدیمی با عبارات نقره به کار رفته نه سکه. برادران یوسف او را در ازای 20 شکل نقره یا 166 گرم نقره به اسماییلیان فروختند. یعنی نرخ یک زن برده زیرا جوان بوده. در تفاوت با سیلای جو شکل نقره ارزش ذاتی نداشت. قابل خوردن یا نوشیدن یا پوشیدن نبود و بسیار نرمتر از آن بود که بتوان به آن ابزار مفیدی ساخت. خیش یا شمشیر نقره در صورت استفاده مثل آلمینیوم مچاله می شد. نقره و طلا در جواهرات، تاج و دیگر های مقام و تجمل بکار می رفتند تا پایگاه اجتماعی اعضای یک فرهنگ خاص را نمایان کنند. این فلزات کاملا دارای بار ارزشی فرهنگی هستند و معینی از فلزات گرانبه سرانجام منشأ ایجاد سکه شدند. اولین سکه ها در تاریخ در حدود 640 سال قبل از میلاد توسط شاه آلیاتس از منطقه لیدیا در آناتولی غربی ضرب شدند این سکه ها یک وزن تعیین شده از طلا یا نقره داشتند و بر آنها یک علامت بازشناسی حک شده بود این علامت شهادت از دو چیز داشت یکی اینکه نشان میداد چقدر فلز فلز گرانبها در سکه وجود دارد و دوم اینکه هویت حاکمانی را نشان میداد که سکه را به وجود آورده بودند و محتوای آن را تضمین میکردند تقریبا تمام سکه های مورد استفاده امروزی از سکه لیدیا سرچشمه میگیرند سکه در مقایسه با قالب های فلزی بینشان دو مزیت داشت اولاً اینکه فلزات بینشان میبایست برای انجام هر معاملهی وزد میشدند. ثانیان این که وزد کردن این فلزات کفایت نمیکرد. چطور کفاش میتوانست بداند که تک نقرهی که من برای چکمه هایم به او هم نقره خالص است، نه یک قطعه سرب با یک لایه نازک نقره؟ سکه جوابگوی حل این مشکلات بود. نشانی که روی سکه می شد، گواه ارزش دقیق خود بود به طوری که کفاش نیازی به داشتن یک ترازو در کنار دخلش نداشت. مهمتر این بود که نشان روی سکه امضای یک حاکم سیاسی بود که ارزش سکه را تضمین میکرد. شکل و اندازه نشان روی سکه در طول تاریخ دستخوش تغییر بسیاری شده اما پیام همواره یکی بوده. من شاه یونانی چنین و چنان شخصا تضمین میکنم که این سکه فلزی دقیقا حاوی پنج گرم نقره است اگر کسی جرأت جعل کردن این سکه را به خود بدهد به این معنی است که او امضای مرا تقلب کرده و شهرت مرا لکدار می می‌کند و من چنین مجرمی را با اشد مجازات پاسخگو خو خواهم کرد به این دلیل است که جعل پول همواره به عنوان جرمی بسیار جدیتر از دیگر تقلب ها داد شده. جعل کردن فقط یک تقلب نیست بلکه نقض اقتدار شاه و عملی در جهت اختلال در قدرت، امتیازات و شخصیت شاه است. عبارت حقوقی آن انکار سلطنت و اهانت به مقام سلطنت است و، مجازات آن معمولا شکنجه و مرگ. تا زمانی که مردم به اقتدار و تمامیت شاه اعتقاد داشتند، به سکه اش هم اعتماد داشتند. تمام بیگانگان میتوانستند به سادگی در مورد ارزش یک دینار رومی توافق داشته باشند، زیرا به اقتدار و تمامیت امپراتوری روم که نام و تصویرش سکه را مزین کرده بود اعتماد داشتند. قدرت امپراتور متقابلا در دینار منعکس میشد. تصور کنید حفظ امپراتوری روم بدون وجود سکه چقدر مشکل می توانست باشد مثلا اگر امپراتور ناچار میشد مالیات ها را بالا ببرد و حقوقها را به گندم و جو بپردازد جمعآوری مالیات جو در سوریه انتقال آن به خزانداری مرکزی در روم و باز انتقال آن به بریتانیا برای پرداختن به سپاه رومی مستقر در آنجا می توانست غیر ممکن باشد. به همان صورت اگر ساکنین شهر روم به سکه طلا اعتماد می‌داشتند ولی شهروندان تحت سلطه آن را انکار می‌کردند و به جای آن به صدف مهره های آج یا توپ پارچه اعتماد می‌کردند حفظ قدرت امپراتوری می توانست مشکل باشد به تلا اعتماد به سکه‌های روم به قدری زیاد بود که مردم حتی در خارج از مرزهای امپراتوری خوشحال می‌شدند که پرداختی‌ها را به دینار دریافت کنند. در قرن اول، سکه‌های رومی به عنوان یک واسطه برای مبادله در بازارهای هند پذیرفته شده بودند، اگرچه نزدیک‌ترین سپاه رومی هزاران کیلومتر دور از آنجا بود. هندیها به قدری به دینار و تصویر امپراتور اعتماد داشتند که حاکمان محلی برای ضرب های خودی از دینار رومی تقلید کردند و حتی تصویر امپراتور را بر آنها حک میکردند نام دناریوس یک نام عمومی برای سکه شد خلیفه های مسلمان لغت لاتین دناریوس را عربی کردند و به دینار تغییر دادند دینار هنوز نام رسمی ارز در اردن، عراق، سربستان، مقدونیه، تونس و چند کشور دیگر است. همچنان که شیوه ضرب سکه لیدیا از مدیترانه به اقیانوس هند شیومی آفت، چین یک نظام پولی تا حدودی متفاوت به وجود آورد که مبتنی بر سکه های مفرقی، تکه های تلا و نقره بدون نشان بود. با این وجود این دو نظام پولی به حد کافی با هم نقاط اشتراک داشتند، به در اعتمادشان به طلا و نقره و این رابطه پولی و تجاری را میان مناطق چینی و مناطق لیدیایی مستحکم میکرد. بازرگانان مسلمان و اروپایی و فاتحان به تدریج نظام لیدیایی و بشارت طلا را در مناطق دوردست زمین اشاعه دادند. بعدها در عصر نوین، تمام دنیا یک منطقه پولی واحد بود که ابتدا بر پایه طلا و نقره قرار داشت و بعد به معدودی از واحدهای پولی قابل اعتماد مثل پوند انگلیسی و دلار آمریکایی اتکا کرد. ظهور یک منطقه پولی فراملی و فرافرهنگی واحد، بنیان وحدت اوراسیا و در نهایت تمام کره زمین را در یک فضای سیاسی و اقتصادی واحد گذاشت. انسان‌ها به صحبت کردن با زبان‌های های غیرقابل فهم، تبعیت از حاکمان متفاوت و پرستش خدایان گوناگون ادامه دادند، اما همگی به طلا و نقره و سکه‌های طلا و نقره باور داشتند. شبکه تجارت جهانی بدون وجود این باور مشترک عملا غیر ممکن می نمود. و نقره که فاتحان قرن شانزدهم در آمریکا یافتند، تجار اروپایی را قادر ساخت تا با آنها از آسیای شرقی ابریشم، ظروف چینی و ادویه بخرند که این به نوبه خود چرخ اقتصادی اروپا و آسیا را به گردش درآورد. بیشترین مقدار طلا و نقره ای که در مکزیک و آند استخراج میشد از میان انگشت های اروپاییان ریز میخورد تا در جیب تولید ظروف چینی و ابریشم چینی ها جایگیر شود. چه اتفاقی برای اقتصاد جهان میافتاد اگر چینی ها دچار همان بیماری قلبی نمی بودند که کورتکس و همراهانشان را آزار میداد و از قبول پرداخت به صورت طلا و نقره امتناع میکردند؟ اما چرا چینی ها، هندوها، مسلمانان و اسپانیایی هایی که متعلق به فرهنگ هایی بسیار متفاوت بودند و در بسیاری چیزها هیچ توافقی با هم نداشتند، در اعتقادشان به طلا اشتراک داشتند؟ چرا چنین نشد که اسپانیایی ها در اعتقادشان به تلا بچسبند و مسلمانان و هندی ها در اعتقادشان به جو و صدف کاوری و چینی ها به ابریشمشان ادامه دهند؟ اقتصاددان ها پاسخ را در استین دارند وقتی تجارت دو منطقه را به هم پیوند می دهد نیروی عرضه و تقاضا نرخ کالاهای قابل انتقال را همسان می سازد برای فهم این نکته یک نمونه فرضی را در نظر بگیرید فرض کنید که در حالی که تجارت منظم بین هندی ها و ساکنین مناطق میلیترانه برقرار می شد به طلا علاقه نشان نمی دادند. پس این رابطه تقریبا بیارزش می بود. اما در مناطق مدیترانه سمبلی برای یک جایگاه اجتماعی دلخواه بود بنابراین ارزش آن بالا بود. بعد از این چه اتفاق می توانست بیفتد؟ تجاری که بین هند و مدیترانه در سفر بودند به تفاوت‌های ارزشی طلا پی میبرند و برای کسب سود باید طلا را از هند ارزان بخرند و در مدیترانه گران بفروشند. در نتیجه تقاضا برای طلا و ارزش طلا در هند به اوج می رسد. همز به مدیترانه سرازیر می شود و ارزش آن هم کمتر تر می شود. پس از مدت کوتاهی ارزش طلا در هند و مدیترانه با هم کاملا برابر خواهد شد این حقیقت که مردم مدیترانه به طلا باور داشتند باعث میشد تا هندی ها هم به طلا اعتقاد پیدا کنند حتی اگر هندی ها هنوز هیچ مورد استفاده واقعی برای طلا نداشتند به صرف این که مردم مدیترانه خواهان بودند می توانست کافی باشد تا هندی ها هم آن را ارزشمند بدانند به همین صورت همین که شخص دیگری به صدف یا دلار و یا های الکترونیک باور داشته باشد کافی خواهد بود تا خود ما هم باورمان را به آنها تقویت کنیم حتی اگر آن فرد مورد نفرت و تمسخر ما باشد مسیحیان و مسلمانان رغم عدم تفاهم در اعتقادات دینیشان توانستند بر سر یک اعتقاد پولی با هم مشترک باشند. زیرا در حالی که دین از ما میخواهد به چیزی باور داشته باشیم پول از ما می خواهد تا به چیزی باور داشته باشیم که دیگران باور دارند. فیلسوفان متفکران و پیامبران تگ دهها هزار سال پول را ناپاک و سرمنشع پلیدی ها دانستند. پول هرچه هست، نهایت بردباری انسانی هم هست. پول بلند نظرتر از زبان، قوانین دولتی، انگاره های فرهنگی، بابرهای دینی و عادات اجتماعی است. پول تنها نظام اعتمادی آفریده شده توسط انسان هاست که تقریبا، بین هر شکافی میان فرهنگ ها پول می سازد و کسی را بر پایه وابستگی‌های دینی، جنسیتی، نژادی یا سنی مورد تبعیض قرار نمی دهد. به وساطت پول حتی آنها که همدیگر را نمیشناسند و به یکدیگر اعتماد ندارند، می توانند به گونه ای مؤثر با هم همکاری کنند. ارزش پول پول بر پایه دو اصد فراگیر قرار دارد. یک، قابلیت تبدیل در ابعاد فراگیر پول است که میتواند سرزمین را به وفاداری، ادالت را به سلامتی و خشونت را به دانش تبدیل کند. دو اعتماد جهانی افراد انسانی به واسطه پول میتوانند بر سر هر پروژه ممکنی با هم همکاری کنند. این اصول میلیون هانااشنا را قادر به همکاری موثر در بازرگانی و صنعت کرده. اما این اصول ظاهرا خوشزیما یک روی تاریک هم دارد. وقتی هر چیزی قابل تبدیل می شود و هنگامی که اعتماد به ناشناس به واسطه سکه و صدف بیحویت انجام می شود، سنت های محلی از درون تهی می و قوانین خشک عرضه و تقاضا جای روابط نزدیک و ارزش های انسانی را می گیرند. جامعه انسانی و خانواده همواره بر پایه باور به چیزهای فراارزشی بنا شده مثل احترام، وفاداری، اخلاق و عشق. این چیزها در ورای عرضه بازار قرار دارند و نباید با پول خرید و فروش شوند. حتی اگر بازار قیمت خوبی پیشنهاد کند، باز بعضی از چیزها قابل معامله نیستند. والدین فرزندان خود را نباید به عنوان برده بفروشند، یک مسیحی با ایمان نباید گناه اخلاقی مرتکب شود. یک سلحشور وفادار هرگز نباید به اربابش خیانت کند. سرزمین آبا و اجدادی هرگز نباید به اجنبی فروخته شود. پول همیشه تلاش کرده تا از این موانع عبور کند. مثل آب که از شیار صدی به بیرون رخنه می کند، والدین به مرحله تنظر کردند که فرزندانشان را به عنوان برده فروخته اند تا برای بقیه غذا بخرند. مسیحیان مومن به فریب و جنایت و دزدی متوسل شدند و بعدها از غنیمت به دست آمده برای بازخرید گناه خود و طلب عف از کلیسا استفاده کردند. سلحشوران بلند همت وفاداری خود را در برابر بهترین پیشنهاد به مزایده گذاشتند تا وفاداری پیروان خودشان را از طریق پرداخت نقدی تضمین کنند. زمین آبا و اجدادی به بیگانگان در آن سوی مرزها به فروش گذاشته شده تا بلیت ورودی به اقتصاد جهانی خریداری شود پول یک روی باز هم سیاهتر دارد پول اگرچه بنیان اعتماد جهانی میان ناآشناها را میگذارد اما مبنای این اعتماد خود پول و نظامهای بیروح و شخصی است نه انسانها و جوامع یا ارزشهای مقدس ما به ناآشنا یا به همسایه اعتماد نمی کنیم بلکه به سکهی که در دست آنهاست اعتماد می کنیم. اگر آن سکه ها از دستشان بیفتد اعتماد ما هم فرو می ریزد. وقتی پول سطح اجتماعی، دینی و دولتی را در هم می شکند، دنیا در معرض خطر تبدیل شدن به یک بازار بزرگ و بیرحم قرار می گیرد. بنابراین این تاریخ اقتصادی بشر بر روی یک تناب باریک حرکت کند. مردم برای سهولت در همکاری با بیگانگان به پول تکیه می‌کنند اما از اینکه پول ارزش‌های انسانیشان را تباه کند و روابط نزدیکشان را کدر در هراسند آنها از یک طرف مشتاقانه صدهای مشترکی را که مدت‌های طولانی در مقابل آزادی عمل پول و تجارت قرار داشته برمیدارند اما از طرف دیگر صدهای جدیدی می سازند تا از جامعه، دین و محیط زیست در مقابل نیروهای اسارتگر بازار حفاظت کنند. امروز این باور عمومی رایج است که بازار همواره بر همه چیز چیرگی دارد و صدهای شده توسط شاهان، کشیشان و جوامع نمی به مدت طولانی در مقابل جاذبه‌های پول تا به مقاومت آورند. اما این یک باور کودکانه است، جنجویان بیرم، مذهبیون متعصب و شهروندان نگران مکررن بر تجار حسابگر چیره شدند و حتی اقتصاد را دگرگون کردند. به این دلیل، این تفکر که اتحاد بشری تنها حاصل یک فرایند صرف اقتصادی بوده بی اساس است. برای فهم این مسئله که چطور هزاران فرهنگ منزوی با مرور زمان در هم آمیختند تا دهکده جهانی امروزی را شکل دهند، باید نقش طلا و نقره را به حساب آوریم، اما نمی‌توانیم نقش فولاد را که به همان اندازه مهم است، نادیده بگیریم.